بی باده ما تا تبانی یکدم، که از باده شبد اقلاده لدین خورم، ابلیس اگر باده بخوردی یکدم، کردی دو هزار سجده پیش آدم. برخیز و بکوب پای تا دست زنیم، می در نظر نرگس سرمست زنیم، در بیست زدن زوغ مدارد چندان، زوغ عجبان باوت که در شست زنیم. خود در کام آرزو در بستم، و از منت هر ناکس و کس بارستم جز دوست چو کس نیست که گیرت دستم من دانم و او چونان که هستم هستم پیوسته ز گردش فلک غمگینم با طبع خصیص خیشتن در کینم علمی نکه از سر جهان برخیزم عقلی نکه فارغ ز جهان بنشینم